بیست و هفتم وقتی صبح شد سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است از کار خود پشیمان شد و سی سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت، من گناه کردم که به یک مرد بی گناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم، اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست خودت میدانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرد کرد و بیرون رفته خود را با تناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتن، نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخ زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدن، تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون می شود. و به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که میگوید آنها آن سیسه که نقره یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تنگ کرده بودند گرفتند و با آن مزرعه کوزگر را خریدن چنانکه خداوند به من فرموده است. در این هنگام ایسا را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید: «آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود همان است که میگویی ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می‌نمودند جوابی نمیداد. آنگاه پیلاتوس به او گفت آیا این شهادتهایی را که علیه تو میدهند نمیشنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد سازد. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام براباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردن پیلاتوس بانان گفت «میخواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ براباس یا ایسای معروف به مسیح را. زیرا او میدانست که یهودیان از روی حسد ایسا را به او تسلیم کردهاند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود زوجش پیغامی به این شهر برای او فرستاد. با آن مرد بیگنا کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمننا سران کاهنان و مشایخ، جمعیت را تشویق نمودن که از پیلاتوس بخواهند که براباس را آزاد سازد و ایسا را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می برایتان آزاد سازم، آنها گفتند براباس را. پیلاتوس پرسید پس با ایسای معروف به مسیح چه کنم؟ و آنان یک صدا گفتن مسلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتن مسلوبش کن. وقتی پیلاتوس دیر که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولی. مردم یک صدا فریاد کردن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد، پس از آن براباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد ایسا را تازیانه بزنن و بسپارن تا مصلوب گردند. سربازان پیلاتوس ایسا را به حیات کاخ فرماندار بردن و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی را به او پوشانیدن و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طانه میگفتند درود بر پادشاه یهود آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتن وان شنر را درآورده لباس خودش را به او پوشانیدند آنگاه او را بردند تا مسلوب کنند در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد آنها او را به صلیب میخکوب کردند آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودن و برای پاسداری در آنجا نشستند جرم او را بر لوحی به این شهر نوشتند این است عیسی پادشاه یهود و بر بالای سرش نصب کردند دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او کسانی که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود خدا می‌جنباندند و با دشنام به او می‌گفتند تو که می‌خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی اگر واقعا پسر خدا هستی اصلی پایین بیا و خودت را نجات بده همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده میگفتند، او دیگران را نجات میداد اما نمیتواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و میگفت که فرزند خداست پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد میسازد. حتی راه زنانی هم که با او مصوب شده بودند. همینطور به او توهین میکردن از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرو گرفت نزدیک ساعت سه ایسا و صدای بلند فریاد کرد ایلی ایلی لما سبقتنی یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کرده ای بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند، این را شنیده گفتند: الیاس را میخواند یکی از آنان فورا دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیه فرو برد و بر نک چوبی قرار داده جلوی دهان ایسا برد اما دیگران گفتند: بگذارید ببینیم آیا الیاس میآید او را نجات دهد یا نه؟ ایسا بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپاد در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زمین لرزه ای شد که تخت سنگ ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند پس قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدن و گفتند بدون شک این مرد پسر خدا بود ای از زنان که عیسی را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلی آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند در میان آنان مریم مجدلیه مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان ایسا بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازهی پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. وانگاه سنگ بزرگی در جلوی آن قلطانیده رفت مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دستجمی پیش پیلاتوس رفته گفتن. عالی جناب ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از سه روز از نوز زنده خواهم شد، پس دستور به فرما تا روز سوم قبل تحت نظر باشد، و الا امکان دارد شاگردان او بیاین و جسد او را و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فرید دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید، بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهروموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند